و الحمد لله رب العالمين وصلى الله و حسود الله عليه وسلم الله طيبين تعالى داخل الشره الله اكبر اشهد ان و اله بعد که شد یکی از ای که در دی از کتوبه ما هران آمده چه باشن. که کنم این تاکه تاوهای قدیب رو امگیده باشم هم از و که به آیه مبارکه که معلوم میشه که یکی از کازهایی که شیطان میکنه در معاوض فهمان رحمانی این که شیطان به انسان دستور میده به انسان که به دستور شیطان تغییر خلال الله رو میکنه الگت دیوزی را عرض میشه از شد که این آیه یکی ای از آیاتی است که خوب از قدیم محل بحث بوده و روایاتی رو که ما از کردیم از زمان صحابه مفرخ شده بعد یا معتقی بودن که هر نوع تغییر کلی یعنی اساسی در بخشی عرض داده بشه در عرض داردن این تعبیر تغییر فرسون یک کسی دستش سالم رو بگیره به گرده این تغییر خبرالله حساب نمیشه. بعد باز میکنه خب تا یه مدت دستش حرکت نداره یه حسه اما نه اما اگر فرض آمد دستش بوری این جزء تغییر خبرالله هست فرسون کسی در آقای موقع داره اینو کافر خور که مثلا به این که یا به حیوانی داد اون جمعه های شهبانیش نداشه این تغییر خبر اما از خودش اخته کرد این روانه تغییر خبال الله کرده این از زمان صحابه از مثل ابن عباد از مثلا عبدالله بن مسعود معتقد بود که این خانوم هایی که مثلا همون به مور خودشون میچکسونن مور اضافه میکنن کلام پیش میدن این یه نوع تغییر خبال الله. این یه وقت راجع به آیه گذشت یعنی این اقبال گذشت و انصاف قدیه ما الان خود ما در ببایاتی که در اختیار داریم ببایاتی که بخواست بعض از این مسادی رو تشریف نداریم اون که داریم چند داری تا روزی محصده و اون اینکه که تغییر دین الله او امر الله پی ما امره به تغییر این داریم که من از کردم ما یه بودم بحثی هم در مکاسه و محفظه با عنوان حرف ت تغییر خرق الله اضافه میشه که ما نگفتیم باید که این بحث حلقه به به این مناسبت آیه مبارکه که آیا واقعا اینها تغییر خلق الله هستن نیستن وارد این بحث حلقه شدیم و روایاتی که از ما و یا احل در تفسیر آیه وارد شد این اجمالا معنای بدی نیست اما حالا اسمش تغییر خلق الله باشه یا تصرف یا به سایه به به نفس در حد معتنابه این مثلا در یک حدی که منتهی بشه به تعطیل اوز یعنی به عبارت اوخرا تعطیل موقت اوز یا مثلا کافور بکنه مثلا یه مدتی مثلا برود جنسی پیدا بکنه این حرمتش ثابت نیست اما اینکه خودش رو کلن از مردی اندازه و اختر بکنه اینها استیج تغییر خلق الله هم نداره همون عذری zarar میگیره لا چرغو و انچو دایی میگه هل خطر هم میگیره یه شبه تغییر خلق الله نداره تو درر zarar نوعی یا شخصی تو ممکنه یک اسپیگر من انجام بدم نه اینجا نوع نگاه می‌کنم کار به شخص هم نمی‌شه که شخصا میارن قضیه علایانه بله مثال دیگه کامون یه تغییر مثلا خفته کردن مثلا خروج یا اخره کردن گوزهن حالا انسان که مشکل داره قطعا اما اخت کردن خلوص اخت کردن گوزهن یا بوز آیا اینها به تغییر خلق الله هست یا نه بحث این مناسبه انصافش این مقداری که ما الان در روایات ما وارد شده و حتی در کلمات اصحاب ما خب به هر حالشون آیه مبارکه هستی اینکه که این کار کنیستی این که آیه هستیه و آیات الهی به اساس تشریع در شریعت مقدس حالا حالا بحث اینکه آیا به اطلاقات شمس پیشانه اون بحث دیگه است اما خودش از موکد نشه یعنی قبل واضح جای بحث نیست آیه اخلاق داره که مطلق تغییر خلق الله حرام یعنی اونه بحثه اما اینکه اجماعا تغییر خلق الله حرام دیگه این آیه در میاد یعنی کند ما از این آیه مبارکه در نمیاد که تغییر خلق الله به امر شیطان من روز تغییر خلق الله مطلق گرفتن من فکر می‌کنم بحث علمی افتضاق میکنه این طور بیدیم. تغییر خلق الله به امر شیطان یعنی یک تغییر که داری هم من بکار بزن در جای دیگه که انما در این تصور دینی اصولا این بخورد ما با طبیعت و اموری که ما داریم حتی در مجزوی طبیعت حتی در مجزوی علوم اینا جنبه سلاسی دارن یعنی اینطور نیست که مثلا اقتصاد اقتصاد در دنیای امروز اینطور بررسی میکنن بررسی ها اقتصاد مختلف بینشون بررسی اقتصاد شما خب واقعا هم اراز احداث مختلفی دارن اما مثلا امودتنم نظرشون اینه که من هستم با عنوان انسان و طبیعتی هم هست معذر هست آب هست یا هست, هست طبیعتی هم هست چه رابطه ای رو بین انسان و این طبیعت درست ب تا اون اهدافی که حالا هر در نظرش هست مثلا ادارات اجتماعی پیاده بشه تا مثلا فرض اونایی که کمالاتی که به رو وجوده به کلی تا اینکه روابط اجتماعی بشه، تا دیگه که داخلی من اما اونی که انسان از مجموعه آیات و روایات رو استفاده میکنه در اون اگه بخیر اسمش را اقتصاد اسلامی بذاریم یکیشون بینش اصلیش اینجاست یعنی انسان و طبیعت رو تنها لحاظ نمیکنه انسان می‌کنم تا از او خدا سرزلیه کنی این یکی از چون این بحث من صادقانه اشاره کنم این بحثی است که ما مثلا خواهیم که به اسلامی نداریم با پسند اسلامی، اقتصاد اسلامی نداریم، مثلا جامعه شناسی کنیم نداریم، و عالم با پسند اسلامی اینها درست نیست، اقتصاد اسلامی نداریم. حالا چی هست اون هایی اقتصاد اسلامی یا اپن دو چیزی که اقتصادی هم اقتصاد اون احدایی دو خاص خود از تو ده که آقایی پروس و جامعه توضیحاتی ارز میکنم و که اون میشه که الان حتم تو رو کردی اون فارغ اساسی اون که کی میشه جوهری باشه اون سزدیگی بودن رو تفک کنه. که در اقتصاد اسلامی اساسن، یعنی اون فارغ اساس اینه خدا و انسان و طبیعت در اقتصاد غربی جبیه در اصال مارس و دیگران اصولاً انسان و طبیعت رو ح جامعه و طبیعت انسانها و طبیعت و رابطه ای که بین افراد نسبت به بهرهبرداری از طبیعت بررسی میشه حالا هالا چجوری از چه ضاویه چجور ناهش بکند چکارش بکند چه, چه دنبال رو اهداف دنبال کنن یه عده بیشتر اهدافو دنبال کنن که به بهربره بیشتر بکشه و به ادارت اجتماعی منتهی نشه د باز بحسا دیر بحسای کلان داره. جزئی داره، تمام داره، بزرگ خورد داره، تمام داره، بحث خاص خودش اما با قطع نظر از اون بحث ها اون که الان مطلوبه این حالت است که در این تمدن جدید حتی در پیلوی از تمدون قدیم اصولاً تو این مباحث در نظر گرفته نمیشه. از این آیه مبارکه اینجور آدم در درمیان خوب دفت میکنی یک سدری دیگری تصور شده اون سو دلیه دیگر اینجوریه شیطان انسان تلیه ولی لده آمارن این بخش شیطانه یکی انسان تلیه و غیران این زمین و به انسان ها برمیگرده این ذله دوبه میشه زره استقامش هم خلق الله هست. یعنی در اینجا به ذهن من نیسته که آن درست کردنش تو ملاذه فرمشی بعضی کلمات رو همه رفتن به عنوان تغییر خلق الله که تغییر خلق الله چیه ظاهر آیت میزنم اینطور نیست ظاهر آیه نه تغییر خلق الله به و تغییر خلق الله تغییر خلق الله به امر شیطان ولی آمونه نه یک زلش امر شیطانه یک زلش عمل انسان یک زلش هم طبیعت و واقعه اون واقع طبیعی لحاظ میشه لذا چون این سرگی ببین این تصویر آمده طبیعتاً طبیعتاً اینطور طبی میشه این عملی رو که اینجا این عمر رو که اینجا تصابه کرده باید در مقابلشون سرگی اصلی باشه نیست خدا انسان طبیعت اون سرگی اصلیش این بود خدا انسان طبیعت اونید که برداشت که در این آیه مبارکه که شیطان میگه من به اونها میگم این کاره میکنن اون شیطان میاد، اون زل اول مثل یک فرصوی به این که یک مسلطی تطور رو کنید به این اون زل اولی که خداست برمیداره به جوش امره شیطان قرار میگه و از مجموعه روایاتی که در توصیف شیطان و حقیقت شیطان و کارهای شیطانیست این ثابت میشه که کارهای شیطانی خیر واقعی نیست مثل سه نیست سه حروبه ها اعیون الناس مثل شعبده نیست متصابه تردستی نیست این شما در بحث شعبده سه کاری میگو یک مقدار از سه در اینکه از شعبده هست هیچ تأثیر مداره واقع و حوض نمی این به اصطلاح نشان داده بچه انسان خیال می مثلا از تو آسینش این قبولتر درمان این در واقع بوده نه اینکه این کار رو کرده یا مثلا یک سکیب می ده تا سکیب برمی این در حقیقت کمانی که آیه نواز که و سه حروبه ها احیان الناس یک درجه از سه همون شعبده است. این در واقعیت نداره یه درجه از واقعیت داره یو فرقون دیگه بین المرع و بین تو واقعیت داره ان شاء تو بحث 3 چون مرحوم شیخ سهر شده اونجا عرض میکنم یه مقدار واقعیت داره یه مقدار اثر هم واقعیت اون که واقعا اون اسلام هر دستی به فالسی و در موقع عربی شعبده بشهید یه چیزی هم داره مال چی مثل چشمندیه فخری نه یه ترجمه یه چیزی نه هیبنوطیزمی که اما انگلیسی برای شما نخواه مصموعیه نه یه اصطلاح عربی داره مثل سرعت و لعن نه یه لحظه و چیزی چیز یادام صلقت رو ادونه اگه همچی تحبیر همون شبیه تردرسی چشم بندی چهوده پس این خوب دقت بکنی ظاهر آیه مبارکه فل غی غیر نخلق الله و مجموعه آیاتی که در باب شیطان هست مفاد آیه ما میخواهیم یه آشارش یک ما آیه رو مفاد آیه مبارکه این نیست که کاری که شیطان امری که شیطان میکنه یک امر ظاهریست واقعیت نداره، سهر و با احیان الناس نه این نیست امر واقعی نه امر ظاهری لیکن امر واقعیش حق نیست واسهه این در مرحیم به تلازم ما بین حق و واقع رو قبول جزء حق نیست اما در واقع هم نیست و اصلا خیلی گردان در جامعه های موجود دنیا نظام ها کار باطل هست واقعیت داره نظام سیاسی است، اما حق نیست واقعیت داره اما حق نیست از این آیه مبارک خوب دقت کنید این نقطه زریفیه معلوم میشه اون کاری که شیطان میکنه در تغییر خلق الله اینه نه این که شیطان میاد کاری میکنه که غیر واقع رو واقعی به ما نشون بده نه اون کار واقعیه یعنی واقعا اون خلق الهی اون قابل تغییر هست هم قابل که الله تبدیل که فرمود لا تبدیل خلق الله و هم قابل تغییر اون تغییر شیطانیه حالا این اگه روشه بشه خیلی ممکنه لطایفی در بیاد ببینید دقت بکنید یه قسمتش که شیطانیه اون امر واقعی است نه اینکه امر غیر واقعی خوب. خب این امر واقعی هم غیر از اون حق غیر از اون که امر الهی در اون مثلثی که عرض کردم خدا و انسان و طبیعت قرار میگیره به جای امر الهی گفت امر الله به ما امر به که در ربایه ما ماندیم امر شیطان قرار میگیره به جای امر الله اما واقعیتش محبوظه این من چرا تأکید میکنم این مسئله که الان به نام به اصلا شبیه سازی مطرح شده یا استنساخ عربا ترجمه شده استنساخ مثل شدیه فوتوکپی به اصلا. خب این عمر واقعیی است نه این که غیر واقعی باشه ادهی هم از همین راه آمدن دو خیلی این عمه خیلی هم عرض شده. اینا به جای این که اون طریق طبیعی و الهی و اون راهی رو که خدا قرار داده که باید نطفه باشه و باشه و اون راه رو راه ها کردن راه دیگه ای قصد به جایی که تولید هر از راه مثلا نطفه بشه نطفه مر باید ترکیب خاص خودش و از این دوتا ترکیب مثلا ترزنی بشه آماده از یک سلول مرد رو گرفتن اون سلول رو دادن باید این رو این نصفه نیست این سلول رشد دادن بعد به گونه‌ای درآوردن با باید ترکیب خاص خودش و باید ترکیبات خاص خودش که دقیقای که خود انسان بشه بلده در این شبیه سازی ات مهم میشه که بچه دقیقا مو نمیدانه هیچ توی چول روز بزرگ شده بیر از مت این شد سا دیگه دیگران تو خب در قرم شروع شد برچ سر ها شروع. تگیری نکردند و باغشن سا شده و پاتیک شد و ویک ها و و نظام های سیاتی اجازه ننداند اشکال همین بود که ما اگر بخوایم از یک طبیعی یعنی مرد و موزار کردن اونم موجودی به وجود بیاد ما موجودی انسانه خصایص انسانی داره خصایص انسانی داره صفات انسانی داره سلسله اعصاب داره اون راهی که الان داره. اما این موجودی که الان ما بارشو سلولی کردیم معنی‌تون چیه این در حالت گویید که مثلا بدن شما یک جای قده درست میشه این مثلا همونه ولی قده بزرگ رو شکل آدم این فرقش با آدمه نظام میگن ما نمیدونیم موجودی که به درس میاد آیا واقعا خصایص انسانی داره روح انسانی داره عواطف انسانی داره اصلا بیتونه اصلا عواطف حیوانی داره این اصلاً چی ازن چه موجودیه ممکن است مثلا این یک خطر وجودی داشته باشه بشریت درست بکنه اینکه بشریتی که من کردم شبیه سازی رو خب این یک شبیه‌سازیه من بعد از این اومدنش ای بابا شبیه‌سازی علم ال آیه قرآن نمیگه کاری که شیطان میکنه واقع نیست این واقعیت داره نه اینکه واقع نیست شباه, هم. شباه هم. خیال میکنن واقع نیست نه این واقع هست نه این واقع نیست لیکن این مغایر غیر دیگریه نسبت اون راه طبیعی و اون آثار طبیعی فرص نصفی در رحم زنی منعقید میشه بعد از یک ماه منعقیدشون با منتق... من... به اصطلاح نردشیدن به رحم زن دیگری خب ما از خل... این مشکل کارش در کجاست اش این هم عالمون غالباً اینجازه در فرسان که اشکال هم انصافاً اون هم همینه مشکل تغییر خلق الله داریش فرق میکنه مشکل کار اینه این مثالی هرده که خیلی واضح مشکل کار در اونجا اینه که راجع به تکین وجود انسان و خود مادر اونم بلقیه تکلیم داره وجود داره حسابی داره کتابی داره این و پدر که طرفی نفسه هستن نسبت به پدر خود وجود نطفه موثره دیگه تأثیری نداره پدر با اون فرزند با جنین هیچ رابطه نداره که در فکر ما رابطه نداره با, با مادر مون. این بحثی که الآن هست این هست که آیا اصلا این عمومت از چی امتظار میشه؟ عبوبت از بودن نصفه از یک تر بگیم منشه عبوبت میشه اما اینکه که نصف از یک زنی باشه این منشأ عمومته این مادری درست میکنه یا همین که این جنین حدود 8 ماه 9 ماه در رحم این زن هست این منشأ عمومته مادری اینه فرسونه از یک خانم نوتر رو میگیرند و یک ماه هم در رحم او هست بعد اون رحم رو جنین با به رو کرد هشت ماه دیگر رو در رحم دیگر, دیگر من, چه خود من که احتیاط که واقعا مشکل انسان بنای از خواب بنای از از اون زنی که از اشناسه شده اون مادر خب احتمال داریم زنی که هشت ماه تو دو شده این مادر باشه بعد احتجام میکنم که از هر به احتجام بکنه آساب و بار چرا؟ در عبورت مشکل نداره به قطع مشکل در عبورت نیست عبورت انتظا عبورت کسی که مسته از گرفته بشه عبورت سقدر میکنه مشکل اساسی کجا پیدا میشه این که عنوان مادری ماری چیه؟ احا. این احتمال هم. من هم احتمال من شما احتمال بحث ایشون رو امهات همونی هستن که رابطه وجودی باشون داره نه مجرد این که نسخه از اونها باشه مادر واگیره همونی که 8 ماه در رحم اونه نه خب من اون که اصلا مشخص اون که نمیاد بیستی گوش باشه مسخه میشه اینجوری این سا کشم میخوانم بخیر و خارجی نگاه میکنه بیشتر بیدیم من حالا من یواشه هاش واضح میشه میخوانم روشن بشه که من بگیدیم که هم ما یواشه هاش میتونیم به اینجور برسیم که این جا به جایی مثلا مسئله چمیه سازی این تغییر خلق الله هست خب ما هر سرین ادهی از آن توقه ها در هم اینجا اسرائی کنه خلقه لگی هم جدو تغییر خل حالا اشکالم هم که خیلی موارد این هست اونم اونام که تقسیم می‌دیمه الی آخر صحبتایی که من گفتم با سخت اکثر لازم میاد حرفی گوشش نمی‌کنیم بعد خریدینه اگر ما بیایم بگیم مثلا تغییر خلق الله مثلا بیشترآشی نیست تغییر یعنی برداشتن یک عضو بذارید من اینجوری تقی سوال شما مثلا یه چی میگن تغییر خلق الله رو بیان به معنای اون راه خلقت بگیرید نه مخلوق. تاکید کردن به معنای اون روش یعنی اون راهی که خداوند قرار داده برای خلقت انسان نوشه یک نقطه محض و یک نقطه ذهن و تاکید مخصوصی. اما اینکه شما رشد سلولی بزنید وقت باز این اشکال مثلا الان زمان ما پیش میاد. خب شما اگر قابل میشین من خب این نکته رو از اون یکنی ذهن روشن ترش شما يقالیدین ببینین چون که در باب تغییر خلق الله اگر ما تغییر ظاهری باشه با مشکل ووشه شدیم که جزاتن هر چیزی که باعث چنین چیزی تغییر خلق الله وارد بشه و حرام خب دومی هم مشکل داره مثلا الان شما می خیلی از محصولاتی که شامل خیلی جزئی محصول خاصی شامل زیر خیمه درست می‌کنه مثلا بعضی از محصولاتو یعنی پیشافتاری شده که کلا 24 تا زیر خیمه یعنی حتی اگه تابستون هم باشه که رو با افتون قرار نمی‌گیره خب شما ممکن است این سوال به خلقت خلقتی که خداوند برای سبزیجاد برای میبجاد برای درخت و بعد حیوان و بعد انسان خلق کرده به این صورتی که سبزی باید زیر سه آمه تولید بشه یکی نور خورشید یکی آب یکی خواهی الان در این کشابر ویژه، حتی خاک را هم برداشتند. یعنی چوب‌های آب هست. سیما درست می‌کنه ریشه‌مون بوته رو تو این چوب می‌ذاره. آب می‌گیرند و بعدم مواد مثل کلسیوم و منشریم کالم یک پمپ تو آب و یک پمپ برایش پم مواد بده. اون مواد در میاد، ریشه میگه از به خاک هم نمی‌خوره. یعنی سه تا عنصر اساسی که ما در تولید میوه یاد داشت و ایجاد داشتیم که حالا که حبیب خلق الله نبود دیگه. اون سه عنصر اساسی عباد و کرچی و خاک و آب. دو سه برداشتن. خورشید و خاکو برداشه همونو آویکی اینو برداشن خب بگی اینا حرام ها مجذزه علا خدای خدا خلقت معنی که خدا قرار بده خلقت داره در ظاهرش مشهد جواب این جواب که ایشون حملله نشین جواب رو توضیح داد اولا البته این هنوز چون تازه شده شاید واقعا تیمواد آثار مزری داشته باشه روی این جوجیاں و قری خوشحال نشین که سنجای نه فر کاره این باید آثارش بعد آثارش برای ده سال دیگه معلوم میشه که واقعا چه مضراتی برای فرضیه جامعه خواهد داشت این مسئله خودشه اون که کی گیانی و این معنی گیان کردن درش رو واقعا نه مثلا وجه فرمی اش دیگه نشد به باید حالا این مشکل مزایی که داره به ذهن میاد حالا من مخاطب این نقص رو بزنم شما خواهد نیاشوش محضر روش به ذهن میاد که شاید این تبدیل خلق الله هست. نه تبدیل خلق الله ما کردیم در آیه دیگر و اوهین آهلک و کذالک اوهین آهلک انتبه ملت ابراهیم حریف هست صرفاً لا ذاتی خطر الناس علیها لا تبديل لخلق الله وقتی صحبت فطرت پیش آمده این خداوند متعال میتوانست سمبل میشه که بشر این کار میکنه هر طراحی دیگه قرار بده لیکن اون راه صحیح اینه تبدیل نمیشه لا تبديل لخلق الله یعنی خداوند در مقام فطرت اون راه درست باشه حالا ان اگر امروز هستیدین امروز الله خرده این بحث خوبیست چون فطره به این فطره به معنای شکافتنه خود کلمه فطره به معنای شکافتنه ارزم کردیم در اون آیاتی که من دیدم این کلمه همه جای سهمالیست در آیات مکیه است من احتمالاً هستم خود فطره و فطره جز اطلاحاتی که در مکه بوده در مدید و فکرت الله هم فقط که این آیات جای دیگه الله نسبت دادن شکاف به خدا اینجا فتردانه شکافتنی خدا این فقط تو همین آیه در کل قرآن جای دیگه نداریم وانان فطرت الله و این شکاف رو چیزی شبیه خروج از قوه به فعلیت چیزی شبیه اون این باید یک تصویری بشه یعنی اون تصویر اساسیش اینجوریست که مثلا شما یک دانهی وقتی سید میگید فرمویی یک دانه هسته سید رو در نظر بگیر یک دانه انگور هست، یک دانه انگور در نظر بگیر این دانه انگور وقتی باز بشه این یعنی الان بسته است منفتر بشه یک درخت انگوره و درخت انگور ممکن است مثلا سید چندت ماشاءالله نفوز بکنه برجلو. خیلی از این حرفان بیشتر هم میشه یا یک درخت سیب ممکن است تا ده این درست ده،, ده دوازده مسی، حالا این چه تأبیر قرآنیست این تو همون دانه چیچی بوده این تعبیر انفتاد و فتر الله و فتر الناس بود دفتن. یعنی اون فترتی که بنا شده این مثلا فلسون دانه بوجه فنجی تبدیل به گوجه فنجی بشه این در این شرایط خاصی که نور و خورشید و زمین و خواهد شما ممکن است نور خورشید رو برداریم بهشون مواد دیگه در نور خورشید به صورت خورده به صورت پود رو قرار بدیم اما کلا از اون ور که معلوم میشه که این فطرت نیست یعنی چه فطرت نیست این باز شده اون نیست یا حساب تعبیر معروف فلسفی مثل شدی حرکت قصویات حرکت طبیعیه نیست اینطور نیست که یه حرکت طبیعیه باشه لذا شما برای اینکه این که مثلا ادامه پیدا بکنه مجبور این جامعه چون هرگز اصل به لا باید دنبالش هم یه بین بده لا صدون و تخلفش شما باید همین دنبال اون هم برید به خلاف اون حرکت طبیعیه که اتفاق می افته خلاصه می بحث رو این که آشاد وا جمع بشه از این آیه مبارکه در زمینه این دو تا آیه اینطور معلوم میشه یکی تبدیل خلق اللهه این تبدیل خلق الله ممکن اینم واقعیت داره غیر واقعیت نیست اما این نما اون انفطار واقعی نیست اون دونه گوجه گوجی پنجی که شما می‌کارین بعد می‌شه می‌کارین درمیاد این اون انفتار واقعیش اون قسمت اللهش اینه تبدیل و, و خاک و آب باشه این باز میشه اون باز شدن واقعیش نیست این یکیه یکی تغییر خلق الله برسته بیر خلق الله اون تغییر خلق الله مثلا شما در گوجه فرنگی چیزی اضافه که رو کنی که این بشه، همی که سم بشه این تغییر خلق الله این هم واقعیت داره نه اینکه این واقعی نیست گوجه فرنگی رو یک چیزی مثلا گیاهان سمی کرد روی نهال نازم کچی بی گوجه پیوند بزنید که به جلی که گوجه فرنگی همیده گوجه فرنگی سمی در بیاد خودشون در بعضی از کشابه از بعضی طبق از دانه ها رو یه جیر خاصی میکنن که دو سه خبشت میگیرد نمخواب از اون این تغییر خلق الله دارد. پس یک تبدیل خلق الله دارید. تبدیل تبدیل الله عبارت از این بود که اون خواصی که در بود یا در نور خورشید بود شما اون خواص رو بسورت پول رو جمع جا جا پای ریشه میفرستي این م این این امر تکمیم هست این معلوم نیست کار شیطانی باشه از جمع بین این فقط یه چیز معلوم میشه انفتار واقعی نیست اون الله نیست اون بغره مثلا گوجه فرنگی در واقعش و ترتکلینش یک خصلت هایی داره که این منتکر میشه باز میشه ما باز بشه تا میشه بوته گوجه فرنگی و ممکن است چند دو هم به شما گوجه فرنگی بده این انفتار انفتارم به این محنان نیست که مثلا شیابی مثل یک مثلا یک زرفی مثل یک صندوقی صندوق شما باز میکنی نه که این جنس هم خودشو ظرفشو مضروفشو ظاهرشو مثلا اون بزر که میدین خود ظاهره بزر هم جز همونه اینطور نیست که این پوشونده مثل یک قلافی اونو پوشونده اون خصلت توی قلافه این باز میشه نه اون پوستش هم جزه همونه فهم نمی خود اون پوستش هم یعنی اون خصلتی که در این بعد رسید زمینی،, رسی زمینی یا بعد زمینی یا بعد رسید زمینی مثلا گوجی فرنگی قرار داده شده اون اینجور خسلت رو داره یک خسلت معیین است باید باز بشه شما می تبدیل حلق الله بکنی اما این باید حلق الله نمیشی تماما جواب نمیده اما گاهی شما تغییر خلق الله میکنی به حلق این تغییر خلق الله در امر شیطان این وقتی امر شیطان روش آمد دقیقا میشه خلاف استفاده مثلا شما پرسوید مثلا جریان بر و زلیل یا متصل یه انسانو بکشه این تغییر خلق الله آب رو رو خانه یکی سیر رو باز میگید که خونه یکی سیر خراب بکنه اینها کار رو خراب میکنه این تغییر خلق الله عبارت از این است که یک طوری مثلا که از باب اضرار مثال اینه که یک راه که خداوند به صورت طبیعی دراز داده این راه رو به دستور شیطان من هر چی فکر کردم به ذهن من توی معنای طبیعی خلقت خداوند امر شیطان رو هم در نظر بگیریم یک امر واقعی که مغایره با خلقت الهی و با اون طریق خلقت و این مغایرت رو به دستور شیطان انجام می‌ده این مغایرتی ای که با دستور شیطان این حرامه حالا اون بحث اطلاق و غیر اطلاق چه دیگه است و هر حال باید صرفاً عنوان تغییر خلق الله بکنه این یک نقطه چون ایده از روایات ما حالا با دقت نظر سندش یکیشان که ظاهر سنن برنامه و ایده از بزرگان اهل سنت تغییر خلق الله رو بدون آیه فطرت الله ارتباط دادن به معنی فطرت مخ در روایات ما و اهل نه جزء فطرت گرفتن مثلا سوی آمده گرفتن مثلا زیر بغل کوتاه کردن موی سر آمده موی بغل آمده آنه آمده تمیز کردن بدن آمده شتوردن موی از بدن آمده چون جزء اینها آمده پس مراد از تغییر خلق الله و امر شیطان مراد این نیست که شما تغییر ظاهری بدید چون تمام اینا که تغییر ظاهریه تمام این آگه بلکه برعکس معلوم میشه که مراد از خلق الله اون دین و اون حالا من روشنش میکنم برد اون دین چی میشه فساس الله علیه حالا ناس علیه اون به اصطلاح باید مراعات بشه یعنی که انما یک زیر بنا داره یک رو بنا داره که انما اینجوریه اون زیر بناش اون خلق الله روبناش بناش مسئله یه فطرت هم... الله نتی فطرت علیه هست لا تبدیل خلق الله و رالک دین القیه که انما یک تبدیل خلق الله داریم این تبدیل خلق الله باید برداشته بشه یک تبدیل خلق الله داریم چونم خدا قرار میده. نتیجه این زیر بنایی روبناس با اون از دین القیه حالا خب تصور بکنیم از دین کلمه قییم در اینجا به کار کن به قییم در مجموع آیات مکی و مدینه به نظر به اسطلاح مکی مدرم بیشتر بخوره این قییم به قسم کن چی نقطهی داره قییم چون از قیامه این با همان انخطار میخوره اگه خوب درمان فسط الله میخوره یعنی که ما این چه باید چه کافته باشه بعد از اینکه که شد که این شکاف هم شکاف الهی این باید دینید تو خودش نه این که شکافتشو از دین بره چون یه در این آیات تصور بفردن یعنی ما باید ز آمورن نهان ولی غیرون خلق الله این تغییر خلق الله منجر بشه که دین قیم از بین بره این نگذار اون رشد بکنه قیم از ماده قیام ایستاده هم. که در آن مواده استعمال داره یه اقلام داره این نشون اینجور میده خلاصه اون تصویر برداشت اینجا یک زیربنا داره یک تصویر از طبیعت داره یک تصویر از واقع داره یک تصویر از جه الهی داره اون دین القیم میشه روبنا تغییر خلق الله و تغییر خلق الله و فترت الله علیقی فترت ناس اون میشه واقع و صلب واقع و حق واقع اگر بخواهی دو دوتا آیه رو معنا بکنی یک مضمون اینطوری طوری پیدا میکنه و حتماید در حتماید اثبات باز بکنید که تراشیدنگی جونست که مقابل بینغیم نیست این مشهر تمثل که با آیه بر تراشیدنگی در اینجا هست هرزا اینشان بحثم بر یه بحثم بحث بحث بحث بحث بحث بحث. بحث بحث. سالالله و علامه